آن روز پنجشنبه بود، و ما کلاس خیاطی نداشتیم. دلم میخواست سری بیاید و بفهمم توی خانه آنها چه خبر است. یا لاقل محترم خانم بیاید ولی هیچ خبری نبود. کاش لاقل مرگم بود. دلم میخواست با یکی حرف بزنم. حالا چه موقع مسافرت رفتم بود؟ یک دفعه از بیمرفتی خودم خنده گرفت. الان یک هفته بود مرگم مسافرت بود. ولی چون زری پیشم بود اصلا یاد مریم نیافتاده بودم. اما حالا که تنها شده بودم راستی که عجب دوست با مرفتی بودم. مریم دوست مشترک من و زری بود که چهار سالی میشد با هم دوست بودیم. خانهشان نسبتا دور بود. منتها چون مسیرمان یکی بود اول توی مدرسه و بعد در راه رفت و برگشت بیشتر آشنا شدیم. و یک بار که مادر صفره نظری داشت مریم و خانواده را هم دعوت کردم و باب آشنایی خانوادگی باز شد و یواش یواش مریم شد دوست سمیمی من و زری و مادرش اکرم خانوم دوست و در عین حال خیات مادرم و محترم خانم مریم فقط یک خواهر بزرگتر از خودش به اسم مهتاب داشت. پدرش چند سالی بود فوت کرده بود و از قرار مادرش با خیاطی چرخ زندگیشان را میچرخاند. به هر حال مریم برای یک هفته همراه اکرام خانم و مهتاب رفته بودی است زادگاه مادر و پدرش وای وقتی که بر میگشت و میفهمید محمد از من خاستگاری کرده چقدر تعجب میکرد با صدای زنگ از جا پریدم حتما زری بود علی که سلام کرد، مطمئن بودم زری جواب می ولی اشتباه کرده بودم. خاله ام بود. خدایا، چه موقع آمدن مهمان بود. خاله من از مادرم کوچکتر بود. یعنی آخرین خواهر مادرم و فعلا تنها خاله ما بود. چون مادر دو خواهر داشت، اما بزرگترین خاله ام وجیه در همان جوانی تازه عروس که بود فوت کرده بود. مادرم میگفت که از قصه او مادر بزرگم هم دق مرگ شده بود. خاله منصوره خیلی شبیه مادرم بود. هم ظاهرا، هم از نظر اخلاقی. او هم درست مثل مادر سه بچه داشت که فقط بچه وسطی دختر بود. خاله خاله آمده بود و من که اصلاً نمی‌توانستم حواسم را به حرف‌های خاله بدهم، به سختی سعی می‌کردم ظاهرم را حفظ کنم. تا او به دل که داشت خفه میکرد می کرد پینه شد و مطمئن شدم نمحترم خانوم خیال آمدن دارد نظری توی دلم هی به زریبد و بیراه میگفتم که هر روز تا این موقع دو دوبار به من سر می و امروز که آمدنش اینقدر مهم است معلوم نیست چه غلطی می کند. مدام گوشم به در بود ببینم این زنگ لعنتی کی به صدا در می آید. و از حرصم مرتب به علی که با حامد پسر خالم حیات را روی سرشان گذاشته بودند تشر می زدم. و مادرم با چشم قره به من می فهمند که ممکنه خاله بهش بر بخوره نه خیر خبری نبود راه افتادم تا همراه مادر و وسیل ناهار را آماده کنم که زنگ زدند خودش بود محترم خانم صدای زربان قلبم دوباره مثل تبل شده بود. محترم خانم آمد و به هوای خاله نشست و سرشان به عرفهای معمولی گرم شد. و مادر صدا زد. مهناز، مادر یه لیوان شربت برای محترم خانم بیار. با صورتم گر گرفت و داغ شد. اصلا معلوم نیست از دیشب تا حالا چه مرگم شده. با خودم گفتم من که روزی دو سه بار محترم خانم را می دیدم. حالا از چی خجالت کشم؟ راستی سر و مرتب است تونتون موهایم رو مرتب کردم و با سینی شربت رفتم توی اتاق سلام محترم خانوم سلام خانوم دیگه حال ما هیچی حال زری رو هم نمیپرسی خندیدم و گفتم داشتم سهجافه یقه رو درست میکردم بیام با زری جادوکمه بزنم خانم جون گفت این سجاف هم که ما الان دو روز درست نمیشه محترم خانم با خنده گفت زری هم آخر لج کرد گذاشت کنار خانم جون گفت لابود سجاف یقیه اونم بر نمیگرده تو محترم خانم جواب داد چرا برگشته لایی رو اشتباه چسبونده خراب شده خاله گفت حالا اولشه، آدم یک شبه که خیات نمیشه خلاصه بحث درباره خیاتی بالا گرفت حالا چه موقع اینجور بحث ها بود؟ اینم شانس من است، یک دفعه خودم به خودم تشر زدم خجالت بکش، چرا انقدر حولی؟ حول نبودم، دلم میخواست بدانم آخرش چه میشود این بی سبری و عجولی هم یک جور مرض است که از بچگی گرفتارش بودم. بالاخره محترم خانوم بلند شد و گفت دیر شده، پنشم بست، حاجا قاینا زود میان، برم نهار آماده کنم. از خاله و خانوم جون خدافزی کرد و من و مادر تا دم در برای بدرقه رفتیم که محترم خانوم نگاهی با محبت به من کرد و گفت ملیه خانوم؟ بلاخره ما بیاییم سراغ عروسمون یا نه؟ سرم رو زیر انداختم ولی نتوانستم جلوی لبخند زدنم رو بگیرم و میدانستم صورتم هم باز قرمز شده مادر جواب داد قدمتون روی چشم؟ عباس آقا گفت کی از حاج اینا بهتر؟ اجازه مهم دست شماست مهنازم انگار زری جون محمد آقا انگار امیر خودمون پس اگه عیبی نداره امشب سر شب مزاهم بشیم هم شب جمع از شگون داره هم کار خیره نباید تاخیر کرد بعد صورتم را بوسید و خودا کرد و رفت چقدر سعی کردم جلوی دیگران نشان ندهم که خوشحالم و زق زده خاله وقتی شنید کلی زق زده شد و شلوغ کرد مدام میگفت الحمدلله قدمم خوب بود من خنده ام میگرفت گرفت. محترم خانوم دیشب آمده بود خاستگاری. چه کار به قدم خاله داشت؟ به هر حال سیل نصیحت های خاله و خانوم جون به سوی من روان شد. بیچاره ها که من اصلا حواسم به حرفای آنها نیست و توی عالم خودمم. نزدیک غروب بود که زری آمد. حول و دست با تازه فهمیدم چرا از دیشب تا حالو پیدایش نشده. با تعجب بوخت گفت: "معنوس؟ میدونی مامانم اینو امشب میخوان بیان خواستگاریت؟" خندیدم زهر مار، خاک بر سر چرا به من نگفتی؟ من به تو بگم مثل اینکه برادر توه ها. من الان فهمیدم که مامان داشت به محمد میگفت امشب بیان می خونتون. میدونی در جواب من که چرا بهم به نگفتین چی میگه؟" گفتیم تا خبری نشده بچه ها نفهمم بهتره. سری هرس می‌خورد و من از خنده ریسه میرفتم. کوفت باید هم بخندی. حالا دیگه تو بزرگ شدی من بچم آره. ولی از دیدن من خودش هم خندهاش گرفت، و زد حدیره خنده. تازه همدیگر را بغل کردیم و چقدر زوق زده بودیم که دیگر از هم جدا نمی‌شدیم. زری هم مثل خودم بهت زده بود و گیج باورش نمیشد که قرار است زن محمد شوم. مدام میگفت: «اصلا باورم نمیشه تو باورت میشه. حالا میفهمم محمد آقا چرا اینقدر دلسوز شده بود و به درس و می رسید. میرسید. میخواست سر از کار تو در بیاره. من چقدر خرم که نفهمیدم. هی hey می گفت اینا رو با دوستت بخون دوتا که باشین بهتر میفهمی. یادتی ریاضی که درس میداد وقتی تو یاد نمی چن بار توضیح میداد بعدم تشرش رو به من میزد زد که اصلا معلوم حواست کجاست؟ زری می گفت و من از تاید دل می خندیدم. زری با هرس می گفت. بله منم بودم میخندیدم بایدم باید هم بخندی؟ این همه حالوگری خنده هم داره. ولی بعد خودش هم میخندید. و در میان خنده گیج و مپود میپرسید. تو اصلاً باورت میشه؟ اصلاً فکرشو رو میکردی محمد تو رو دوست داشته باشه؟ من اصلاً فکر نمیکردم محمد حتی به این چیزا فکر کنه. یاده ته میگفت توی این گرما نمیشه راه دور برین یه جا همین نزدیکی اسمتون رو بنویسین آخرش هم هزار تا دلیل رو و مادر رو رازی کرد بریم همین آموزشگاه فکرستنی سر خیابون؟ منو بگو فکر میکردم برادرم فکر منه و دلش برای من میسوزه که خسته و زده نشم. نگو خیر، گیر کار جایی دیگه بوده. این حرفا محمتم به محمد را زر زر بیشتر میگند. و خوشحالیم چند برابر میشد. بالاخره از صدای خنده های ما صدای خانم جون درآمد که برین خدا رو شکر کنین که زمونه عوض شده. اگه نه حالا بایست پوست از سرتون می کندن. قدیما دخترا رو اگه زوغم میکردن توی دلشون بود. چه خبر خونه رو گذاشتین روی سرتون؟ زری خانم، حالا شدی قوم داماد. باید بشی همبونه ی با تا عروس حساب ببره. ولی جواب ما باز هم خنده بود و خنده. آن شب مثل همه ی شبها و روزهای خوب. مثل همه ی زندگی. مثل خواب و رویا سری رسید و گذشت و تمام شد خانواده محمد که آمدند قبول نکردند بروند توی مهمانخانه و همانجا توی حیات روی تخت ها نشستند محمد سربزی رو خجارت زده آمد با پدرم روبوسی کرد و نشست مجلس با شوخه های خانم جون و امیر و به خندهای خند و آقا جون خیلی زود خودمانی شد ولی من مثل بید میلرزیدم تنم یخ کرده بود و دستم توی دست زری بود و لرزان با هم از پشت پنجره حیاط را نگاه می کردیم مستأصل نشستم روی تخت و گفتم سری من رویم نمیشه بیام بیرون زری با تعجب گفت دیفونه مگه عقل از سرت پریده مامان بابای من یه شب شاخ در آوردن یا از بابا و مامان خودت خجالت میکشی؟ اصلا فکر نکن اومدن خواستگاری. فکر کن اومدن مهمونی نمیتونم به خدا زری خودم هم نمیتونم چه مرگمه اینقدر که دنم میلرزه نمیتونم روی پا وایسم هرچه اصرار زری بیشتر میشد استراب من هم چند برابر میشد بالاخره خانم جون صدا زد مهناز زری خانم به زری اشاره کردم که جواب بدهد. زری بد و بیراه گویان رفت و چند دقیقه بعد همراه مادرم و محترم خانم برگشت. محترم خانم گفت فا مهناز جون چرا رنگت اینقدر پریده؟ والا به خدا ما همون آدمای قبلی هستیم. اسم خاستگار روی اومده ترسناک شدی؟ مادرم گفت نه بابا این حرفا چیه؟ و من ناچار دستم را به محترم خانم که دست دراز کرده بود دادم و بلند شدم. محترم خانم گفت تو را خدا نگاه کن. دستوش انگار از زیر یخ اومده. بیا با خودم بریم مادرجون. این شطور در خونه هر دختری خوابیده. حالا تازه ما غریبه نیستیم. با هم شناسیم. اگه تا حالا چشممون به هم نیفتاده بود چیکار کار می پیش خودم فکر می کردم شاید اگر نمی شناختم راحت تر بودم. توی حیات هیچ جوری نتوانستم سرم را بالا بگیرم. محترم خانوم که گفت هاج آقا اینم عروست همونطور سر بزیر و با صدای لرزان گفتم. سلام هاج سلام بابا. ما منتظر بودیم عروسمون چای بیاره ولی خبری نشد. خانم جون گفت. الان هاج همین الان میاره دختر ما توی چایی دم نکشیده ریختن استاده همه زدن زیر خنده و من همراه زری رفتم که چای بیاورم وقتی تعارف چای تمام شد حاجقا قبل از اینکه من هم بنشینم گفت خانم جون با اجازه شما و حاج عباس، بهتر نیست تا ما چای میخوریم بچه ها حرفشون رو بزنن خانم جون گفت دختر و پسر هر دو مال خود شما، مختارین، اجازه مام دست شما. بعد با مهر با و چشمهایی پر از شیطنت رو به من گفت. مادر، محمد آقا رو راهنمایی کن، برین حرفتون رو بزنید. خدا وکیلی حرف راست به هم بزنید، چاخان نکنید. باز همه خندیدند. و من در حالی که از شدت خجالت احساس می کردم از صورتم بخار بلند می گفتم با اجازه. و جلوتر از محمد به راه افتادم هنوز به روشنی فضای آن اتاق را می بینم کار همین دیروز بود مبلهای مخملی بزرگ با میز گرد چوب گردو که رویش یک ظرف بلور بزرگ پایدار پر از میوه های تابستانی بود آینه و شمدان نقره عروسی مادرم و عکس پدر بزرگم که سر تاخچه ما را نگاه می کرد. پرده های مخمل زرشکی که تورهای سفید وسط آن با جریان هواتکان می خورد و بازتاب تا شیشه های رنگی پنجره رنگارنگ و زیبایش کرده بود. با صدای لرزان گفتم بفرمایید و خودم روی مبل اولی ولو شدم. محمد هم روبرویم نشست من که از لرزش بدنم کلافه بودم سرم را آنقدر پایین انداخته بودم که تقریبا چانهام به سینم چسبیده بود چه سکوت مزخرفی بود سرم را به سختی بلند کردم تا ببینم محمد در چه است که نگاهم برای چند لحظه توی نگاه چشمهای مهربان و سیاهش که انگار به من لبخند میزد گره خود. دوباره سرم را پایین انداختم ولی با یک حس خوب جای اضترابم را شوقی ناشناخته و خاص گرفته بود آرام و مهربان گفت شما اول صحبت میکنی یا من بگم لرزان گفتم شما با لحنی بینهایت نرم و شمرده گفت اول باید آروم بشی چرا اینقدر میلرزی من هنوزم محمدم برادر زری که مسئله ریاضی تو حل می کرد فرقی کردم چقدر لحن صدایش گرم و آرامش بخش بود دوست داشتم ساعتها حرف بزند و گوش کنم ولی ساکت شد و منتظر بود نمیدانستم چه بگویم دوباره گفت مهنس خانم سرم را بلند کردم و با لبخندی که ناخداغاه صورتم را پوشانده بود نگاهش کردم. باز نگاه من برای چند ثانیه توی چشمهای هم ماند. و این بار او با لبخند سرش را پایین انداخت و گفت خب حالا بهتر شد و بعد شروع به صحبت کرد. او می گفت ولی من فقط محو صدا و لحن حرف زدنش بودم. برای همین هم بیشتر حرفهایش را نمیفهمیدم. فقط توی این فکر بودم که حرفهایش که تمام شد من چی باید بگویم؟ واقعا که آقا جون راست میگفت. گفت، هنوز بچه بودم. من به تون صدای محمد گوش میکردم، نه حرفهایش. مثل بچه ای که به آهنگ لالایی گوش می کند. نه به مفهومش. من چه می دانستم از شوهرم و زندگی چه می خواهم که حالو بتوانم حرفهای محمد را بفهمم و با معیارهای خودم بسنجم. وقتی حرفهایش تمام شد و منتظر مند با چه جان کندن و تته پتهی گفتم که حرفهایش را فهمیدم و قبول دارم. حرفهایی که شاید نصف بیشترش را نفهمیده بودم و او هم شاید نارسایی کلام مرا پای خجالتم گذاشت. و آن شب گذاشت در عرض یک هفته بعدی ما دوباره دیگر با هم صحبت کردیم و برای شب جمعه یه بعد قرار بله بران گذاشته شد توی دل من و خانه ما چه شور و شوقی بود خانم جون از همه خوشحال تر بود و با حرفهای های بامزش همراه صدای خنده های امیر شادی را چند برابر می کرد روی پاپ بند نبود و حالا که مریم آمده بود توی جمع سه نفری مان شادی بینهایت بود و روزها سریع میگذشت. شب بله بران آقا جون همه را برای شام دعوت کرد چه برو بیا و شلوخ بلوغی بود و در عین حال صفا و سمیمیت دو خانه شیرینی همه چیز را چند برابر میکرد. کرد محترم مرتب سر میزد زد که اگر کاری هست کمک کند و من رو زری برعیس از شلوقی استفاده می کردیم و از زیر کار در می رفتیم. آن وقت خانم جون که بیکار بود و حواسش جمع مچمان را می گرفت. الان که سالها گذشته، حاضرم چندین سال از عمرم را بدهم و یکی بار دیگر آن روزها برگردد. تا من این بار قدر لحظه لحظه آن ساعتها را بدانم. به هر حال مراسم بلهبران بران بی نهایت راحت و صمیمی برگزار شد. نه علم و ای، نه چک و هیچ. وقتی هاج اختیار را به خانم جون داد و گفت هرچی شما بگین، همه ساکت شدند. خانم جون با شیرین زبانی خاص خودش گفت دختر مال خودتونه، هر گلی زدید به سر خودتون زدید. هاج با خوش گفت عروسم تخم چشمم، هم وزنش تلا هم بگین حرفی ندارم. ولی خانم جون آنطور که بعدا خودش گفت به ملاحظه اله فوری گفت هرچی مهر عروس اولتونه مهر دختر ما، که دوتا جاری با هم حرفشون نشه. آن وقت صدای خنده و کف زدن همه با هم قاطی شد. من و زری که از پشت پردهها اتاق را نگاه می کردیم از کار زری که یادش رفته بود یواشکی داریم توی اتاق را نگاه میکنیم و ناخداگاه محکم کف زده بود از خنده ریسه رفتیم. وقتی تقریبا ساکت شد خانم جون دوباره رو به محترم و هاجاقا کرد و گفت در زم هاجقا ما وظیفمونه ای و ایراد دخترمون رو خودمون راست حسینی بگیم که پس فردا باعث گله گذاری نشه. با این حرف خانم جون پس من تقریبا بند آمد دختر ما تا الان پاش به آشپزخونه نرسید و پخت و پسس اصلا نمیدونه چی هست از تاریکی و سوسک کم مثل دیو دوسر میترسه یه سجاف جه رو هم سه روز طول میکشه تا بلک خدا و پیغمبر کمک کنن و درست کنه باز صدای خنده بود و جواب حاجقا عبی نداره مادر شوهرش هم کم غذای سوخته به ما نداده و از خیاتی هم فقط پارچه خریدنش رو بلده. با اعتراض و خندگی محترم خانم همه میخندیدن غیر از من که فکر میکردم حالا این حرفا جلوی همه گفتن داره اما خانم جون دست پردار نبود و ادامه داد. خلاصه ها جاقا گفتم که بدونین این ی ما ترسوست. اگه یه وقت حرفشون شد، محمد آقا بچه ما رو شب و شم تنها نذاره. این بار محمد از ته دل خندید و سرش را پایین انداخت. و من بیش از حرفای خانم جون این دفعه از محمد ترسم گرفت. به هر حال قرار عقد برای روز نیمه شبان که دو هفته بعد بود گذاشته شد. و برای اینکه من به مدرسه بروم، قرار شد برای عقد دفتردار آشنایی بیاورند که حاجقا میشناختش تا اسم محمد وارد شناسنامی من نشود. و بعد که درس هر دومان تمام شد عروسی کنیم. حاجقا هم به آقا جون قول داد که اگه محمد خواست برای ادامه درسش به خارج از کشور برود، من را هر طوری هست همراهش بفرستند. وقتی روی کاغذ قرارها نوشته شد و بزرگترها امضا کردند، صدای صلوات و دود اسپند فضا را پر کرد و من دیدم که خانم جون سر در گوش حاج و محترم خانم چیزی گفت که با تکانهای سر موافقتشان را در مورد چیزی که من نمی دانستم اعلام کرد